اللهم اجعلنا من الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله على سيدنا رسول الله و آل حفاي بينا على اللهم ورحمنا متعرض روایاتی بودیم که افتداعا درارت میکرد برای این که این مسئله افایلهیه ای که اشاره شلاشیگه مربوط میشه این جزوه حنیفیت یا جزء فطرت یا جزء به اصطلاح ماسنه و ابراهیم سلام علیه این روز روایتش از کتاب اه... مستدرک هستم تو کتاب جامال احادیس هم داره این جلد که از این چاپ جیز جامال احادیس دومتره برایتش تحت عنوان صفحه 299 عباب تقلیم الاسفار عباب اول نمیشن جعفریاد به اصنادی اما علی بن عبی طالب البته اینجا در این بگویدی که اینجا آمده بله، مطلب رو از علی بن عبی طالب نقل کرده و ارز شد که سابقا ما اده از روایات داریم اده از روایات داریم در حدیث نوفلی انسفکونی که سندش به علی ابن عبی سندش به اصطلاق به علی ابن عبی طالب برمیگرده و لیکن روشن نیست یعنی توضیحن ارز کردیم در روایتی که که روایاتی که به اسم سکونی دارید زواهدش اینطور نشون میده که اصل اون روایات اینجوری بوده ان جعفر محمد عن ابي عن ابائه عن علي قال تو باعث شده قال رسول الله در بعضی‌هاش شده اینو خوب دقت بکنید این چه که ما الان داریم مثلا تو بعضی جا جعفر ابن محمد قال قال علی جان حذف شده ظاهرا اون سند درست و اون نویسدار اصلی اینجوری بوده سکونی عن جعفر بن عدیه ان اباهی ان, ان علی قال قال علیان بعضیان بالا ان علی قال قال رسول الله اگر ان علی قال باشه به اصطلاح سنت حدیثی که از صحابه نرمیشه کلام خودش باشه موقوف میگه اگر صحابه از رسول الله نرمه مرفوع میگه اصطلاحی در اهل سنه از بودن اگر کلام تابعین هم باشه مخصوب میگه این ای اصطلاح خاص خودشه این اصطلاح پیش ما خیلی وجود نداره رو این ما خیلی کار نکن در کتاب جهفری یاد این طور آمده به اسنادی همه علی ابن طالب اگر این باشه معلوم میشه که از خود امیر نقل شده از رسول الله نیست در کتاب مکانمون اخلاق در این صفحه دیویسه هشتا در این جامال احادیث داره انه صادق قالا لاغول ابراهی این در حقیقت یکیه درکه اونجا انه صادق انه عبیه انه آبایه انه علیه هر شده کلا این روایاتی که مربوطه به سکنید این نقطه یکیه پنیش رو در ذهنتون داشته باش. این یکی. در اینجا علیه نقل کرده در نسخهی که الان ما از چه یاد داریم و به عنوان قیل ابراهیم گفته شده اگه سیغی مزگول خیلی جا بخاطر نصرات به خداست قیل ابراهیم خلیل رحمان تتحر فا اخرا من ارفاره فا مغیلهو تتحر فا نفف تحت جناحی سب مغیلهو تتحر فا نفف افتی این ابطهی با تحت جناهی ظاهران یکیه برای ظاهران اشتباه شد سم مقیل لبوتت هر فحله و آنته سم مقیل لبوتت هر این چندها با عنوان تتخور که ظاهران ترجمه کلمه حنیفیت و تحنف و عربی باشه. اینا آمده اینجا البته جناهی و ابطهی بود اما به نظرم نسخه مکارم این حرف عجیبایی نزید بله اخذ اقل شاربه اونجا از داره اینجا شارب داره و ابته و اقل نما ازواره حالا وله اون نداره اینجا شاربه انداخته به جا جناهه ارده درست نیتون با همون شارب باشه و شاهد هم داریم که این نسخه جعفریات حتی مشکل داره حیل از اینکه حالا مکارم نقل کرده همین رواست جعفریان در کتاب دعائم آم هم آمده همون دعائم الاسلام اسلام مالا قاضی نعمان مصری از سرمشون رئیس قضا احلا قضا قضا از اون زمان مورتن رئیس قوه قضایی در دولت فاطمی های مصر خصوص در زمان خلیفه سبونشون از این سبون به چارو مهل امام المؤید حالا الامام معع ویشنون معضظرفا این فاطمی ها اووانشون خیلی مقعیت بودن بعضیش خیلی بعضیشون بعدشون میت راجع راجیب خود الامام معث خود قازینامان کتابی در سیریشون ویشون نوشته آثار آثال قازینامان چاپ نشده بود پیش ماها از دائم و نقلکرد سر اما هم دائم که چاپ شده تعر و دائم چاپ شده. تقییه تا تا کتاب از آثار قازنامان چاپ شده. که خیلی واقعا توجه و التفات کتاب هاییش هم یکیش همین ایزاه رساله ایزاه ایشان چهار شده فوق العاده نافه فوق العاده رساله حجیبیست در آثار علمی مثلا آثار علمی که الان ما در اختیار نداریم ایشان در اختیار داشته من از کردم کلیه آثار قاضی نعمان ایشون که اسمایییه ولو مرموم هاکی نوری اصلا داره که ایشان اسماییشه واضح یاصای سری سلیسان، جلیسه یک قسمتی الان فرقه اسماعیلی رو کتاب به قاضی ما اسماعی از اسماعی چیز می که به همین قاضی نعبادونه. ماذی خریشون گینه اسماعیلی نیست. اصلا این وقتی این کتاب اسماعیلی معاصر رو نوشه. دقیقاً له اونجا جلوی میگه اینکه مثلا شیعه مدن گفتن قاضی مثلا شیعه است. میگه من من زنده‌م خودم رو میگم اسماعیلی من که چیه؟ اینو میگه. خودم مثلا در حال حیات تفسیر گالایان شکیع اشعره هم بیاد یک فریح بسیار بزرگوار مثلا اسماعیل بیها رو بگی این مثلا شیعه احسان شد دیگه موارد اشتباهات ما مهاجری میگه فرساد نکشن اشعری نادرست نیست ایشون اشعری که تا تمام این جهتمون علایو حالن ذکر کردیم ما یک جغرافیایی هم یک علم یک جغرافیا هم برای حدیث مطرح کردیم یعنی حدیث رو به لحاظ شرح ها. و کلارا نرس کردم ما میراث ما از مصر خیلی زعیفه کلا میراث مصری ما خیلی ضعیفه. اون که الان در دست داریم حالا ایک چیزه ما نرسیده میراث مصری ما که الان در دست ما الان در دست ماست و ازش استفاده میکنیم جوت هاست یکی این که دی همین کتاب دعایم و دعایم از جعفریات گرفته دیرزم نرس کردم در کتاب ایزاه تسریح میکنه چند جوامین کتاب کتاب جعفریاد ولو در کتاب جعفریاد اسم بن جعفر سامولاله هست و اینا هم به امام کازم اعتقاد ندون اسمهایی و که اسم بن جعفر عنوان راوی آمده چون کتاب جعفریاد توسط محمد به محمد ناشعس کوفی در متر ترین شد حدود سالهای سی حدود این سالها بعد خود قاضی نعمان هم معاصر ایشانه. هم پیشون این کتاب را از موسا پسر اسماعی پرزند حضرت موسی نجرفن نهار کرده اون هم از اسماعی اون هم از موسی موسا نجرفن از امام صادق انعبی انعبای انعبی ببیه سن اینجوریه از این که این کتاب با این که به نام موسا نجرفن هست اما چون امام موسا نجرفن اون راویه اونا قبول کردن حال، یکی از راههای خوب فهمیدن متن کتاب جهان تریاد همیشه با دعایم است که الان به نظر ابتدای یا ۳۵ ساله که ۵۰ سال وفاتشی، از این امانه ۶۰ ساله که ۶۰ سال وفاتشی، ده سال بعد زیشون کرده، ده سال وحستا، این چیز همیشه ولی دو بعد از ۸۰، ابتدای ۸۰ از وفات پازی نامانه. برهاز الان این کتاب رواه زیاد از این کتاب در کتاب دعائم وجود داره بخدا در دعائم اینجوری گفته انا علی انه قال از عبارات دعائم معلوم میشه که هم رسول الله نقلش کرده انا علیه یعنی علیه. اما داره قال او الله تعالی قیده نداره و همون نسخه مکارم یکمیش با مکارم یکمیش با نسخه جرتای ام تو تته ان تته و آخره من شاربه در این جهت هم باز با مکاره می‌سازم چون در مکارم شارب داره اما در مسی جه قریا چاره نظره بجای شارب, شارب جناهی داره که بنظرم یه دو بال بال که نمی‌تونی بلی بال بشه یه داره این واجی به متن حدیث انشالله تکمیل کنم که این میده روش هست که اینجا این متن حدیسی که ما داریم تو شرجه به احتمال بسیار قوی داره که از کلمات خود عنیون مامولین باشه. من یک توضیحات مفصل دارم. مفصل نیم. مفصل از, از اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم از نوادگان صحابه کتابهایی رو به جدشون یا احادیث رو یا نوشتارها رو به جدشون نسبت دادن. اینو من مفصل بحث کردم. اولی نشون کتابی است که به زید نسبت داده شده. زید توفه حضرت سجاد انا عبیه مثل اون حدیث این طوره انا عبیه یعنی حضرت سجاد انا عبیه الحسین انا عبیه اون هم دو جوره مصند زید هم دو جوره انا عبیه قال انا عبیه قال قال رسول الله تا اونجایی که ما میدونیم در نوادگان صحابه این اولین کتابه اگر مخصوصا من حضرت سجادش بگونیم این اولین کتابه اصلاح سن اهل سنت مجهولش میدنن زیدیه ها بعضی شبهه دارن اما معروف بین زیدیه ها قبولش دارن مهمت کتاب زیدیه همینه مصند زیدیه ها مجموع فقی مجموع فقی رو اینی ما هم مثل خوبی قبول کردن اما انصافا هم کلی مشکله به نظر ما که آثار جعل دارش برید نیست جعل اجمالی نه اینکه کل واحد خراب باشه هلا حاله یکی هم کتاب سکونیه این چند تا کتاب نسبه کتابها کتاب ها مشروع شد سکونی هم با این سند ان جعفر هم عبیه هم آبایی هم علیه خالقال رسوله خالقال علیه. یکی هم از نوالگان امیر المومنینه زیاده من پاید برای این که کمی ذهنی پیدا بشه زیاده نوای امیر المومنینه که از اولادشون عمرد نه این کتابی که ما میگیم سکونی از امام حسین و امام حسن از طریق اولاد حسینی و حسنی اون نه اون از طرف ها عمر النهلی اون اسنادش اینه ایسر نه عبدالله ان عبیه ان جبدی جبد یعنی عمر النهلی انا علیه قارقار رسول الله این ها کتاب های تیگاه یک شمعه یکی باییم داری کتابش اینجا نیست و باید بحثم این بحثم اینو خوانی کتابشون رو تویشن بر از این نوادگان نوادگان صحابه هم دارم از بیت هم داریم. تو اهل بیت مخواستم این توضیح بدم زیدی ها هم دارن ما هم داریم سنی ها هم دارن در این جهت مخصوص از این حیثم عبدالله عمری عددی از اینی چی دارن و اینا هست مجموعه کتاب هاییست حالا چه مقداری صحیح یا نه اونا بحثای دیگه که الان جاش اینجا نیست و اصل این روایات چیه؟ اونم احتیاج به یک تحقیق دیگری داره که جاش نیست. من فقط اشاره اجمالی عرض کردم سکونی به مهمترین کتابی که بین ما بوده سکونی بوده توضیحات مفسده جاش اینجرینیست فقط من اینو عرض بکنم اولا نکته مهم سکونی مطالبی رو از امام صادق نه میکنه حتی در اون باب خودش اگر حدیث دیگه هم اصحاب ما داشته باشن با اون مرد نیست این هم برامای نقطه مبهمی هستند. مثلا در باب سلات و مسافر زراده اروعتون یا تمونه علا این ها اینه مثلا ستتتون لایو قصدون یک مثلا داره سبعتون این ستتون یا سبعتون که سکونه هم از اصحابا نردن این روایه از نجروسی این سکونی و کار به وساقتش نطوری این حاله چیان نفهم این که یه ادبیاتی داره سکونی در روایاتش خیلی نادیت من حساب مجموع در صدی دو اگر روایاتش بقیه اصحاب نه اصلا تعاویلی که ایشون از دوام ساده قدر یا قیدر نمیمونی کنه به خودشه ادبیاتش خاص خودشه این یک نقطه بسیار مهم در روایت است مثلا همین باید قال الخلي و رحمان فقط منحصر از در قومی موزیه البته الان که از قومی هم نیست این یک مشکلی است در روایات سکونی اما دیگر در که من نمی‌خوام مزری به سکونی صوره این کتاب سکونی به ذهن ما اینطور میاد چون نکاتی که گفته نشده اون یکی بگن که حاج نور فصاد فاجب جعثر یاد در این خاتمی مستدرک بخت اول جعفریات در جد این چاپ جهدی شده در جهد اول بسا خاتمی مستدرک همون سطح اوال کتابه مثلا اولین کتاب رو جعفریات بررسی کنیم رحمت هم پیشنه اموقع اصافت رحمت خوبی کنیشن البته ایشان مثل کسایی که مثلا 50 سال قبل از ایشان بوده اعتمادشون رو همون نسخه هنده تاریخی میگه جعفر یاد همین واسطی که 1287 77 از هند آورده بودن از اون و اون نسخه چه اعتماد کردن اعتمادی که دارن و اون نسخه است حاجی مرید زان واسه خب موازس مثالی که الان اینجوری از صاحب جوادر عباطه شده اینطوری کامل شده ایشون فورس شده میتونه باشه لیکن کسایی که از جعفر یاد در خلال اباص نقل کردن ایشون خیلی به کتاب تند شده و قبول نکرد صاحب جوادر برموم حاجی روی هم کلام میشون آورده بر و حدود 17 سفرم تعلیقاً اولاً ثانیاً سالساً وابران خامساً سالساً برموم و صاف جوال اشکال کنه این بحثه خاص به خودشه اون بحثه تیشون نوشتم من اصولاً متعرض نمیشه نقطه ای که در مورد جعفریاز هست این موقات فنیش این جزا آثار مصریه ماست ما یکی دو مورد در کتاب عربعه داریم که از موسا پسر اسماعیل نقل شده با همین سند مطمئن دا که مثلا کلیدش در کتب ما از موسا پسر اسماعیل مثلا خبستون چار پنج مورد بیشتر نیست و این هم نمیدونیم چی دیور شده این ما الان یک تحقیق روشنی برش نداریم میگم حاجین روی عبارت رو آورده متاسفانه به تحلیل های تاریخی نمیدرسن چرا؟ چون اسمایی پسر امام موسد نجفن خب یکی از فرزندان با شخصیت یعنی که از های معروف در میان فرزندان امام و اسمایی اسمایی پسر موسد نجفن و اینقدر شخصیت داشته که مثل صفوان ابن یخیا که در مدینه فوت میکنه در سال سوی که خب دیگه جلالت شهن صفوان واضحه امام جواد هم می کنه اسماییل امونشون در جنازه اون نماز می کنه اون یک شخصیت خاصی می کنه حالا اگر ما این سی ده رو قبول بکنیم خوب دفت بکنیم و شهاد موسیقی جواده هشتاد و ست سیده فرز هم بکنیم روز بکشه هایی ایشون هم باشه ایشون در اون زمان حدود سی سالش بوده این دیگاه رو اگر ما که حیات اینها ابحام داره. و من سابقه هم توضیح دارم نه میخواب خیلی از حدیث خالف شمید من عرض کردم اصولا اسماعیلی ها به طور کل طور کلی اینه همین آخانی ها که ما بشون به طور کلی اسماعی ها یک مشکل تاریخی دارن اون مشکل تاریخشون فاصله بین اسماعی پسر امام سادر تا و به دلال مهدی که در مصق یابگر دیویستان آزه هشت اسماعیل 138 یا 139 138 وفات ایشانه اسماعیل. بعد از اون رو در پسرش محمد میدنم محمد بن اسمانی خیلی از سر محمد بن اسمانی خبه ما حدود زمانهای شهاده موسیم نجفر از اون زمان تا سال دیویست و نود و مهدی در مزقیاب میکنه هم در بین اسماعیلیها بی ها از اینا تبیر به ائمه ست رو میکنن رو میدن نگه اینا مسور امه سفر هم متاسفانه کسانی هستن بچه محمد و بعد پسرشوه هم نوشی متاسفانه کسانی هستن که اسماهای اونها فقط در کتب اسمایلی ها آمده باید با مشخصه مذر بگیم ما ندارن سانی ندارن اینا کی بودن چه کاره بودن راست راست نی هیچی ما نمیدونیم اگر اگرم شینیده شده باشه که مثلا علمای بغداد خریفه بغداد نهام سید مرتزه از شیعه سید مرتزه هشت نفر دفعه داشتن که اینا سید نیستن اون اشخال در سیاضت اسمایلی های مصر فاتم، فاتمی های مصر نقطه شمیه ده ده ساله که اصطلاحا خود اسمایلی بهش اینه سه میگن باید چون فکره این قسمت ها از تاریخ میشه خود اسمایلی روشن نیست. اینا یک شرح مفصلی دیدن تصادفا یکی از های ای تاریخی این کتاب قاضی مامان چاپ شده یه مقدار ایناست که این آمد در و... مصر نرفس نرس جسمالونون تونه تیره اون اسمه قدیمی قدیم تونس اینا اسم قدیم در اونجا و شیوخ اشعاعی رو با اون شب تو... ندی چیز... یعنی اون مطالبی که ایشون نوشته فقط از راه اسماعیلیه قابل تصوره در کتب تاریخ احمده ما هم که به تنقولا نرسید این صدا سال اتا هم یک عدهی زندگی مختیران داشتن در تشریف حکومت در مرسل باشم شد این اسماهیل پسر موسران جعفرم خودش رفته مرسل این قاعدتا باید سالهای دیست و دیست و با بچه هاش چون تعدیر مرمون نجاشین سکن هو و غور دوهو به مرسل این اشاره به هم. اینا معلوم میشه جزء کسانی بودن که حالا اگر راست باشه نوه های تو سرای محمد و اسماعیل وردنوش در مثلا در دنبال یک زندگی مخیانه و به استلا هرمزی چی میگن زندگی چی به سراغ در یک زندگی مخیانه حرکت مسلحانه مخیانه داشتن در مصر اسماعیل پسر اون سنجه به اونجا مریخ شده اینا رو ما الان نداریم این که من از می‌کنم استظهارات شماست اینگلو شاگین زتایی فقط نجاشی میشه سکنه هو و و روح هم ان بعد از سال 10 تا 228 این یه شورا که داریم که ایشون در مدینه بوده 228 تا و و یه واضحه تاریخ چون او به الله علی قیام میکنه و به مصر رو میگیره و بعد کشید خلافت میده خلافت فاطمی که شاهپشاه خلافت عباسی در بغداد بوده یه خلافت البته همون وقت در اندلس بوده که اموی بودن سه تا خلیفه بودن عباسی و حسینی به اصطلاح فاطمی و بعدم امری حسینی ها یا پاسمی ها در مصر بودن به قبل این اسماین سکنه ها و به مصر به احتمال بسیار بسیار بسیار بسیار, بسیار قدید مثلا در سالهای دیویست و سی و چه همراه عموزادگان خودش رفت رفت مست چون ما الان مجموعاً دو تا سه تا در کتب عربه امن ها تحضیب داریم مثلا محمد نیح یا الخزاز ع موسی بن اسماعیل انعبی نداریم زیاد روایت کلا دو سه اما این کتاب مختصر رو محمد ابن الاشعه از موسی نقل می‌کنه در سال 310 310ه تقریباً نشر کتابه این سال‌ها تو ذهنتون میونه فیو شو ببین وقتی نقطه فنی رو داشتیم مثلا با ما واسه اینا در این وقتی هم توضیح دیم والا بحثی نیست لامقام توضیح بیشتر بکنم اون نکته فنی اساسی کارو دقت بکنی که ما هم اسماعیل پسر موسی بن جعفر اگر فرض رو بر این بگیریم که بعد از 210 که مسلم در مدینه بوده و حدود سی سال عمر بوده 20 سال سی سال دیگه هم تو مدینه بوده فرض کنید چون که پسرش باید به حدی باشه که حدیث برغم چرا اسماعیل این کتاب در مدینه روایت نکرده این ما خیلی معقوله اوز. این کتاب رو اسماعیل چرا در مدینه نرمی کرد؟ پسر ایشان نرمی کرده موسا اون چند که ما از پسر ایشان داریم سشازه بیشتر نید در این داریم خیلی محدوده خبقل عاده محدوده تا دو دمونم هم همه چمه دارم من که واقعا نرم درستی دارم از خود اسماعیل ما هیچی نداریم. تصور این مطلب که ایشان مثلا 30 سال بعد از فوت پدرش من پدر جونسن جوفر علیه الصلاه والسلام علیه اطمئنان ایشان مثلا در این عمر در مدینه باشه و کتاب نقل نکنه اون وقت بره مصر در این دورانی که از هم دوران ابهام در مصر این دوران دوران ابهام مصر یعنی دوران ابهام در تاریخ شیعه چه اسم ساعه چه زیدیه چه اسماعیلیه در اونجا ترسط تسرش ابن العشق اصل بکنه این خیلی این نقطه امهام داره چی طور این نقل نکرده و همجور که حاجی نوری هم تصورتم درست هست این کتاب روایاتش تق... تقریبا نبرکه تحریقا با روایات سکونی می خوده. مشکل کاری که این کتاب داری اینه لذا اونی که به ذهن ما رسیده بعد از جمع جور احتمالات، ایشان کتاب سکونی رو احتمالا اگه حالا بگیم اشتباه نکرد دروغ نگفته که شمش از دروغ اجله از راه پدرشون نرمه کردن از موسف و ما راه دیگه ندونیم غیر از این راه این آقا مثلا شاید به پدرشون گفتن این کتاب رو مثلا سکونی نرمه کرد بله مثلا سکونی پیش پدرم هم ن مثلا هم اما نه اینکه که حالا درست باشه نباشه ممکنه تغییه باشه ممکنه جازی دیگری باشه که الان بخش خاص خواست خودش داره به هر حال اون نقطه مبهمی که الان برای ما هست این که اسماعیل این کتاب رو در مدینه نهارو نکرده رفته در نصر اونجا نهارو کرده مثل با این جغلافیه که الان برای شما عرض کردن اصلا شیعه در اونجا نبودن که این کتاب رو مقابله بکنن سی و ده این کتاب نهشی میشه در که به نظر ما همون کتاب سکونی است از یک طرف این یک طرف است، از یک طرف از سکونی روایاتش ادبیات خاص خودش داره یک دو سکونی اگر راست باشه که وفاته 180 ما نداریم در میزانه به زهبی آمده که وفاته 180 اگر راست باشیم مطلب مطلب قبول میکنیم. ایشان مصنجعها درک کرده اما نقل نمیکن. یک باشد بشه مصنجع این کتاب رو هم نقل کتابی که داشت این اگر راست باشه وفاتش ابن ابی امیر یونس و سقمان و این بزرگان ایشان در کردند مشکل کار سکونی در مرحله شواهد های ایشان به استثنای عبدالله بن مغیره که از اجلای عصا و معروف به استثناء ایشان اجلا لا نقل نکرد ی مرحله دوم دو مکتب اول بغداد متاسفانه اجلدار روایتشون نرم نشه مثلا جمیل کله علی دو سال از ازش تمرکز 250 صفحه برد یعنی ارزش علمی ایجاد بعد از این تقریر شاگردها ای شاگرد معروف ایشون نوفلی شده ارزش عرضش... نوفلی مثل چاپخونه نمون مثل در حکم ناشر ارزش علمی خودش مضافه یک تذریفی هم داره ارزش علمی نوفلی نداره بعد از نوفری از های نوفری ابراهیم نهاشمه نوفری هم زیاد راضی نداره عمدش ابراهیم نهاشم این دو طبقه با خودشم که حتاب کنیم سه طبقه چون خودشم افراد داره شدود در نهر داریم بعد از ابراهیم نهاشم با آمدن ابراهیم نهاشم در قوم که از سالهای دیگه سخوردهیه این بعد از ابراین هاشم از بعد از مثلا دیست و بیست و سی کتاب سکونی فوقل آده نفر شده سعده نبدالله نهار کرده محمد نهار نهار کرده صفوار نهار دیگه این کتاب شهره از اون زمانه روشن شد این کتاب مثلا تمنه حالا تاریخها را ترضیر دیم فرسول 140-150 از امام صادق شمید این همش انفراد داره ضعیفه تا دویست و خورده ایم اونا توی اگو توی قوم این کتاب رواج شده رو می‌کنه بدون شک. لکن با مراجعی که ما الان داریم خاصه به کافی یا محمد احمدی یا دیگران دائما نقل‌های این کتاب امغوس منورشه. یه حدیث در کافی هست در خبیری در فقی هست در کافی نیست در تحلیث و در هیچ کدوم نیست. در کافی از هم خیلی عجیبه غریبه رواسه سکونی یعنی در قبول و عدم قبول یک نواخنی صرفش هم نمیدونیم چه طور شده اگه این کتاب معتبر بود از امون درمان تعلیمش باید شهرت پیدا میکرد پس کتاب سکونی که الان یک کتاب معتبری تعریف شده، و مثلا شیخ تولسی میگه عمل کردن اصحاب این زمینه شهرتش سالهای دیدیست و به درده تاریخ خوبشن شد براتون صرف شهرت را هم نمیدانیم در سالهای چهارست و سی این 20 سال بعد از شهرت کتاب شیخ توصی به مناسبتی در بحث قلده حضرت اصول ایشون یه بحثی داره در کارهای حالا من تمام بحثیشون ایشون رو نمیگم یینی که نه هرگز شیخ در ائده گفت اینا سنی است و که نیست نه این نگفته اشتباهه شیخ توسی در ائده دو بار راجع به مذاهب فاسد بحث کرده یه بار یه بحث اوردی گفته اینا اگر ضعیف بودن فاسدان در مذهب ببین شکافتن اسم سکونی اونجا نیست اشتباه شده حدود 14 صفحه بعد باز دو مرتبه به یک نقطه دیگری از باب مزار فاصله داره اسم سکونی اونجاست چونجا تو تصحیح نکردین که اشتباهی برای بعضی از ما پیش آمده یک بار اسم اذهار مسار ارباب مزار فاصله رو برده اما اسم سکونی نیست اونها شما یه بار دیگه که ارباب مزار فاصله رو به این عنوان که این کسانی که ارباب مذاهب فازده هستن نگاه میکنیم اگر معارض نداشت و اصحاب هم برخلافش نبودن نه یا کن حدیس آن لام یا کن لام به خلافه اون رو ما قبول میکنیم ولی آن عمل ل اصحاب در واقعی سکونی پس بحث شد نصب نیست؟ حالا این بحث شما از من همه بحث تمام نکاتش این یعنی که شما رو هده ممکن است بگید آشه کلامش دیویس سال بعد از شهرت کتاب شان حجیت نمیدونم ولی به ذهن من که بعد نیست کلامشه میشه میشه قرینه بشه که این دیویس سال رو توجیه بکنه چرا کتاب سکونی بین اصحاب ما مشهور شد سر شهرت کتاب مروم شد از سال های دیویستوسیه دیویستوسی هم هنوز کتاب جعفریاد مطرح نبود ست سال بعدش مطرح شد اما از سال دیویستوسی تقریبا که اصحاب دروازه روایت سکونی عمل کردن به تعدیر اینجوری عمل کردن روایاتی که معارضی شما نداره و اصحاب هم به خلافش نباشن شما از مرادیشان روایتی معارض نظرش بخون باشه قول به مخالط هم مرادش باشه یعنی به عبارت دیگر در جایی که از خو روایت نداشتن رو وجود به سکونی کرده یا اند من تعین مفصل صحبت چندینی الان کام جمع بودم مثللب رو هم از اون تعمییر دادهه خیلی مفصل چند جلسه آاج به س صحبت کرد سوال یک جلسه خ نوشه. من مختصر و مفق جمع است یا به عبارت دیگری باز بگیم من از خواب ما شقین تغییر نفر ش توصی از خواب ما با روات سکونی معامله اصل عملی کرد اگر روایت نبوده به روایت سکونی عمل کرد این یه تحلیل تاریخی داره تحلیل اصولی خیلی مفصل است نمیخوام الان متعرض اون بخش بشن سابقا هم گفتم شما ما باید دوستان یه بار تحلیل تحصیلیش نمیخوام باید بهم اجمال اتفاقی پس روایات سکونی تحصیلی شد میخوام این را ارزو کنم میارهای تحصیلی هم واضح شد اون جاهایی هایی بود که از خوا روایت روایت حالا نکات فنیش چی بوده باشی من نمی خواهد اون این قبول شد توسط کلینی مخصوصا شیخ صدوق و حتی تحجیم شاید بکنید که اگر نگاه بکنید در فهرست شیخ تیسی یا فهرست نجاشی وقتی کتاب سرکونی رو نروفن به قوم میارن به نسخه باید نهاشه از بغداد دو این که مستقیم برن به کوفه کوفه نزید کرده از بردان میان بم به همون نسخه را هاشه ن فنی شد. میان بقوم به همون نسخه رانا هاشه یعنی که ان ما شهرت و همین نسه روناشین در قومه اون وقت در ما از سال ۳۱ که طرح کتاب جعفری یاد شد و بعد هم اجازاتش تو اون قدیمترین اجازه ای که ما میدونیم ۳۳ به بردا آ یکی از چهره که برد وقت چهره که کتاب هم چند نفر اینکه با من نمو خواهد بشم یک چهره بسیار معروف است تحلیب نحمد دیواجیه احتمال ما دادیم البته این طریقی شواهده قطعی نداریم شاید ادهی از شیعه که به اصطلاح موزیما انقلابی بشون میگن اینا چون نظام فاطمی در نظام به اصطلاح موزید نظام نیمه اشترا بعدها دست به ترور بردن موض این تاریخی اینا که میگه پدان استمایا من میدان دیگه پدرحتبا هم همین جز اینا ال یا حاله به خودشون یک خلافت بود که به اصطلاحوززی پاوررن ها داشتیم یعنی اصطلاح این اینجور بود که مستفین با خلافت بودن و در اون زمان مستقلی هم نمایندهشون به س اوال ها به در اصطلاح اوض که از های به اونها هم با نظام برداد بیدن نظام برداد مظهر به اصطلاح نظام فهودالیز بود و نظام به اصطلاح فاتمی های مصر تقریبا مظهر سوسیالیزم حساب میشود تقریبا نیمون کنم شرعی این قسمت که از بحث به طور کدی خالجی حالا یکرد بفرموی این از اون زمان ظاهرن اده اشیعه که تفکراتی مثلا اونجای داشتن به مصر هم میرسن این سحلیب احمد دیواجی در سفر که منست داشته مستقیم کتاب رو از ابن اشعف گرفته اورده به بغداد این نسخه ای که من دیروز خوندم از کتاب نوادر راوندی من دیروز از خیلم هست رویانه اول سنده هر اون نسخه سحلیب نحمد دیواجیه چند تا نسخه با از این کتاب الان میشه این میخوام نسخه شناسی بکنم این میخوام بحث بشه اون نسخه مشهورتر سحله ناهر دیواجی است که نجاشی را اسم بیبره. اما از وقتی که به بغداد آمد اول به اجازه بود بعد به ناهر حضوری در بغداد آمد علما ازش استقبال اونچنای نکردند اینی که صاحب, صاحب جوایز حاجی رجالی نیست، فاریغدار نیست صاحب که صاحب جوایز داره این کتاب خیلی مشهور است حق با ایشان حاجی نمیگه جواب نه, نه اینطور نیست حاجی نمیگه شباهر تاریخی به این نهلی سه ارز کردن اوزای سالجوار این مثال رو داره بشید شما علی فرد نبوده لیکن شباهر تاریخی دیه. به نظر من نقطه این بوده وقتی آن بغلاده همون کتاب سکونی وقت مشکلش چیه اون محضوب هارم داره چون از کردم ست سال قبل از این کتاب سکونی آماده این نهلش هرز شده بود درست شد. این دو مرتبه این کتاب رو درسن اشعاع تو همون کتاب سکمون مذكورند خب دیگه نیازی مش نداره به چون اون درستاش گیره همون که در کافی بود و استفسار بود و در کافی بود بعدا فریح آوردون این که درستاش مذکوره که مذکور بود برای اون دراپ شامل نكده این تاریخ نوشته باشه چون ثبیه تو این کتاب سر این که خیلی این کتاب اعتنا نمیشه البته نه مرو نجاشی نمیشه نه شیخ نجاشی متفریذ کتاب شده صرفش نه بعد هم نسخه از این رو مرموم صدف از الله راوندی علی الله عبدالله و عبدالله ایشون نه به نام نوادر این همون نسخه صدف احمد دیواجیه یک نسخه هم در اختراس انتابوس بوده رحمه الله یه مرمونی هی تبسطی اینا به ما رسیده خود نوادر راوندی باز بین این شهرت پیدا نمی کنه هر با اصحاب جماعت انصحاب شهرت بدا. این شهرتی که الان آمده است و چاپ شده است اینا اینا تقریباً بعد از همین نسخه هنده که 150 ساله قد تقریباً از هند رو اوته این نسخه هنده به نظر من نسخه هنده باید به سهلیم نحمد دیواجی و الان تو دهنم این لحظه بزورده همین نسخه چاپ شده که آر بروژیری چاپ برمیدن چاپش هم اولین بار ترسلال بروژیری این نسخه که الان مشروع شده این به نظر ما این کتاب همون کتاب سکونی است اون مشهی هم که داره این خلاصی تحقیق کتاب سکونی هم تو اون که من دیدم البته تحلیل خاصی مستقلن روش نکردم خیلی از متونش به احتمال بسیار بسیار قوی پیش ما از همون کتاب موزه که در کوه به اسم امیر منسوب منصوب بوده و من نقداریش هم مطابق است با کلمات با بقیه با عده از کلماتی که از خود صحابیات ها به این نقص شده اون نیمی فهم که در این که تو به ایمام عرضه داشته از فرس حکومی به این و به اتفاق آراب دل آمو کذاب کزا به اتفاق احتمال بساقت هم توجاز نشده یا احتمال حسن و لین و لین و نه بسنه حالا به اون درجه نه احتمال معقولتر که شما چون انفراد زیاد داره تعابیرش انفرادی داره. شب مجموعه رو جمع کرده امام هم تایید فرمودن گفته مثلا این رو از کتاب اما نه اینکه امام به حساب واقع رو اون بیان کردن حالا چون قاضی موسیم بودی در, با... در کتاب ما نیمونی اهل سنن حالا یا منطب اجتماعی داشته لطب اجتماعی خاصی داشته خود ما هم خیلی به این کتاب اعتقاد درستی نداری به کتاب سفونی یا به طبع به کتاب جعبی دارم لیکن من حیث و مجموع به عنوان که از میراث های ما در قرن چهارم ارزش داره آنه غیر کتاب سکونی بودنش هم به لحاظ کتاب سکونی و هم به لحاظه ایکی از میراث های ما که الان یکی از مذاهب شیعه یعنی از ها اعتماد بسیار زیادی و همین کتاب داره. یکی از مسادل کار اونها همین کتابه کتاب جعباری که الان هم یه حدیث این متن حدیثا فعلا در میان اهل سنت پیدا نکردیم در غیر از این کتاب هم جریی اکلون هم کتاب سکونی بوده جای پیدا نکردیم البته تو این متن اسم لحیه برده نشده راجع به کتاب جعفریات منظور ما رو نشه اون صحبت ایشون جای تحمل داره صحبت طولانی است بعد برگردیم به مواصع خودمون خب ایده ای هم نوشتن که مجهول سندونی میشناسید نه مجهول اصطلاحی نیست آی خوبی در این بخش‌های سابق اگر یاد اون ورتون بشه خونده. یه روایت بود در اوال همین سوال‌varphi ایشون فرمودن که صحیح هست این الجعفریات قبول کردن. اینجا که در حلق الیه مرادیام از جعفریات ببینید تمام سوال مون هم همینوری تکرار چون حلق الیه من الموسیق یا من در جعفریات هست. حالا بعد توضیحش شهر می‌کنم. اینم ما داریم. این جای چون این سند قبول نکرد. دیگه عجیبه این مسوالش واقعا اولش یه من تو نیست. این سندها جعفریات قبول کردن اینجا قبول نکردن اما هست کردم رای اخیر خویی اگر ما رای اخیر بدونی توی کتاب مبانی تکملت المنهاج معجم اینطور نیست اما تو مبانی تکملت المنهاج چون بعد از معجم نوشتهن توی مبانی یعنی جلد مبانی تلمیون مبانی رو همو ظاهرن مبانیم خودشون میردتن کوفه بینیم خودشون مرخوب این مبانی رو ارز کردن در اول در شرح این مسئله که یجوز و فقیه اقامه و حدود چون یه روایت اونجا از جعفریات میارن آن اونجا مراجعه کنن اون مبنای ایشان اینه اونجا خلاصه مبنای ایشان چون جعفریات کتاب، کتابه کتاب و طهاره، کتاب و سلام. این جعفریاتی که ما داریم حدود مثلا فرس 13 تا 14 کتاب نجاشی هم به عنوان کتاب کتاب اسم برده یک نکات پنگیه نیجا داره نمیخواه بگم مجید به موسا که احتمالا به این جرفریات اضافهی موسا باشه نجاشی هم یک کتاب های دو تا یا سه تا کتاب الان در این جرفریات ما هست در نجاشی نیاده یکی هم در ج... کتاب نجاشی هست که در کتاب ما نیامونده درد کردیم اون روایتی که میگه مثلا اقامت حدود علم امام اون تو کتاب جعفریاتی که نجاشی اسمش نبازه آی خوی فرمون سند ضعیفه به خلاصه بحث خوی اینه اون مقدار از جعفریات که اسمش تو نجاشی آمده قبول میکنه اون کاری که اسمش در دا قبول رو نمی کنم. پس سه تا مبنا متاسفانه رقم وسادش هست. میخه آخر آخر چیه؟ یکی مطلقاً قبول کردن، یکی مطلقاً رد کردن، یکی هم تفصیل قائلن. حالا اگر این تفصیل هم ببینید، این روایتی که الان ما درو می از کتاب طهارت اسم این کتابی رجاشی هم هست. صرفاً <تصفح> برای ارج این روایتی که الان ججعثی یاد نقل شده که قال الله لعبراهی این در کتاب نجاشی اسم این کتاب وارد شده از اون کتبی نیستی در کتاب نجاشی اسمش نیامده و الله علی محمد و آله